برساد برساد و بپذیراد و بنیوشاد دادار اورمزد پسند یزدان باد حیاره وهان رساد به خوشنودی مینوی دادار عورمزد رایومند و خروحمند خشنودی مینوی ارمزد اواغاه صده ویس پیشام به خوشنودی مینوی رحمن و ماه و گوش و رام به خشنودی مینوی اردی بهشت بلند و آدر و سروش و رحرام به مینوی شهریور و خور و مهر و آسمان و انارام انقر روشن گاه خدا به مینوی سپندار مزد و آبان و دین و ارد و به مینوی خورداد و تشتر و باد و فرودین خوشنودی مینوی امرداد و رشن و اشتاد و زامیاد خوشنودی مینوی هاون و رپیتوین و و, و عیبی سرسترم و اوشهنگاه باد به خوشنودی مینوی گاه گاتابیو احنود، گوشتود، سپنتمد، وحوخ و هشتویش باد خوشنودی مینوی حومی زد برزی زد نیرو سنگی زد و وحان و آفرین ایزد باد به خوشنودی مینوی گاه گاهانبار میدی و زرمگاه میدی و شمگاه پیتی شهیمگاه ایاس میدیاریم میدیاریمگاه و همس حت میدیمگاه به خشنودی مینوی امروز روز فیروز و فرخ روز ماه خجست ماه گاهه برساد پسند و پذیرفته دادار اورمز کام باد کامه ای باد ایدون باد ایدون ترج باد عشم و هو و اوشتا استی اوشتا احمایی یت اشایی و هشتایی اشم